رب العالمین و صلی و علا سیدنا و عالق طیبین و کاخرین المعصومین و لعت الدائمت و علا اللهم فرنات مجمعین و رحمتی را رحمت به مناسبت مع تعرض برای اصول و اصولی که در و حکمیه جالی میشن متعارض ادعا از مباحث شدیم و از اینجا را که در بابه اصول عملیه شک رو شارع یا حالا حتی عرف او در اون جایی که عرف او است به نحوه مندرک تلقی و ملاحظه میکنه یا به عوات دیگر رو نکنه معنای حرفی یعنی یک شیء واحد و یک شیع ش... مطلب واحد رو ممکنه که از دو لحاظ از دو لحاظ بکنه با اینکه یکی یکیه فرمه نمی کنه مثال همون بارزی که بیروز عرض کردن اگر کسی سر سجده بردار شک از سجده دوباره انجام دادیانه با اینکه که شک از سجده از دیگه عنوانیم که سجد دون انجام داد یا نه بنایه روی و ها برای است که دوم دون انجام ده یا به عبارت دیگر استساق انداره سجده میکنه. چون تاله که انجام نداده بود شک میکنه آیا الان انجام داده یا نه استساق یعنی در اینجا میاد شارع محدد نگاه میکنه یا حالا اینجا که شارع اینجا عرفی هم هست دید شارع عرفی هم شارع محدث میرن شک که او رو لحاظ میکن به لحاظ این یقین عدم سجده شان قطعا اینکه سجده نکرده بود حالا شک میکنه به لحاظ یقین عدم سجده لحاظ میکنه اگر به این لحاظ نگاه کرد خب در اینجا استصحاب جاری میشه سلام علیکم استصحاب عدم سجده و یک سجده اضافه کن در همین مورد شک اگر ایشان مثلا نمبا مرسا بلنش رو در رکوع شک کرد در سجده این نه شکلی چرا همه میکنه شکشیه که شک کرد در سجده دروم را انجام داده یا انجام نداده در انجام بینید زاویه دیل عوض شد شک در سجده در حالی که تو در جزئه دیگر اقارد شدی انما شک و فیشه ای اندم تجازه فا ادار جز تبو شک و که لیزه بشه شک یکی فهم میکنه شک در طریقه دوم شارع بیاد اینجا حکم میکنه به این که نه تو سجده انجام داری نماز تمام خوب بکنه میگه به بی این شک و لذا از کرده که قاعده تجاوز از حالا جهت اغلایی محدودی که داره یک نوع تحبود شرعی استثباه هم اغلاییت داره اما این خائره تجاوز فیل جمله اغلاییت داره اما به این عرض عریضش این تحبوده در حقیقت که این شاید در وقت قراره تجاوز و فرا توضیحات کافی خواهد آمد این پس بنابراین در یک شک واحد در یک شیء واحد میاد شاره اون شک رو از اون زاویه نگاه میکنه برای این انسانی که در حال رکوعه در رکت بعدی به این شک اکنانه کنه برای سجدهش انجام دونه همون شک در سجده برای کسی که هنوز محل باقی باید, باید انجام ده. شما یکی که گوشتی رو در بیابان میدونیم نمیدونیم این گوشت تذکیه شده یا نشد نمیدونیم خبر نداریم یعنیم چاره بیگه در اینجا اصال از آدم تذکیه قبل از مورد که تذکیه نبود اصال تا عدم تذکیه تبرای اصال تا عدم شما حکم میکنین که این گوش مزکا نیست خب شما همون گوشت رو یک دی که گوشت هم ببینین شک میکنن اما یک قصاب مسلمانه تو بازار همون شک فرق میکنه. شما همون گوش رو میبینین شک میکنین که آیا شاید ما این تذکیه شده یا نه اینجا هم خب بازگه هم اتا تعدام تذکیه بیرسه میکنه این همون شکه اینجا میاد شاره شخص رو نگاه میکنه با حال مسلمان با حال شک شکیه شک شکل تذکیه ازش ایش فهم میکنه یه دفع شکل تذکیه رو به عنوان این که شک میتونی این فعل حادث شد تذکیه حادث شد چون مسبوق به بوده از اتا تذکیه جایی یه دفعه باز تعبود میاد شاره همون شک در تذکیه است اما میاد نگاه میکنه دست مسلمان دوشه، سوق مسلمانه، اعصاب مسلمان باید همون شک در تذکیه رو این زاویه که نگاه میکنه حکم به تذکیه میکنه. از اون زاویه که نگاه میکنه حکم به این سر مسئله هست این رو باید شما چیجور تفسیر بکنید این نقطه کار اینجا است. این مطلب درست. یعنی این مطلب جای بحث نیست. اگرد قرار بکنید. بین علما جای بحث نیست. این دوستان مثالی که من زدم جای بحث نیست. انم از بحث. این که شما در سوق مسلمان از سالت تذکیر رو جاری میکنید. قاعده رو جاری میکنید. ید در اینجا به این معنی. نه ید مالکیه. قاعده مسلم رو جاری میکنید. و دیگه به مراجعه نمیکنید. شما در شک در وقوع عادی تجاوز رو جاری می‌کنه دیگه استصحاب عدم تجزیه نمی‌کنی این این بحث لطیفی که آیان و اصولین متأخر شیعه در اینجا آورده این بحث دارای های مختلفی شدن من این زاویه اون بحث اینه که نسبت این دو تا دلیل اطلاع چطور شد شما در یک جا یکی رو بر مقدم کردیم شون میگه سوق مسلم یاد مسلم علامتی این که این پاک صحیحه میخواد تسکیه بشه غیر تسکیه اساسا عدم تسکیه فی نفس سر میگه شک کلی در تسکیه اثر عدمش میخواد تو سوق باشه تو بیابون باشه تو صحرا باشه تو دریا باشه فرقی نمیکنه چه نقطه فنی آمد که شما در جایی که سوق مسلم بود اون لاکن گذری یقین به شک رو برداشتیم این سوالی که سو اصول متشرکی ایراد دادن میکنم. چه ای بود که شما با این که لاتن قدر به شرک در اونجا جاری میشه در مثل سوق مسلم لاتن قدرین سابقا تذکیه نشانم اصلا عدم دسته مثلا راه های مختلفی رفتن این یک نکته فنی و قانونی جمع بین دو تا ماده قانونی مثلا یک راه که که ای رفتن این که در مورد قاعده سوق مسلم در مورد قاعده تجاوز دائما استصحاب است دائما استصحاب عدم شاسی اما در مورد استصحاب دائما قاعده سوق مسلمین اگر بگیم قاعده سوق مسلم تختیس می به استصحاب به مورد نداره همیشه استصحاب این یه راه اگر فرض کنید که ادعی معتقدا کیفیت جمع بین رسولان دلیل اینجوریه یعنی به عبارت اخرا در مورد قاعده تجاوز همیشه استصحاب است چرا شارح خط تجاوز که جواز تجاور به دلیل استصحاب استوار نشه؟ معنا رو تعریف کن. اگر بخوایم بگیم قاعده استصحاب مقدمه، قاعده تجاوز بمورد میمونه. اگر بگیم قاعده تجاوز مقدمه قاعده استصحاب مورد داره، رضاره مورد داره. یعنی این یه راهه. یه راهه، کیفیت جنب این راه اختصاص رو این نداره. در جایی که اون خصوص مطلق هست ملرشان همیشه همینطوره مثلا میگن اگر فرض کنیم مثلا بگه اکثر علما بعدو لا حکم فساق که نشده که خصوص خدا اینا که اونجا رسید که اکثریت به اتفاق علما هم فساق <تصحیح> میگن اگر بنا تعارض بکنه کسی داره اکثر علما نیمونی نداره این یک شاهده کیفیت جمع میشه تو متفرقه موارد دیگری از کیفیت جمع بین دو تا دلیل که نسبتشون به حسب زهار اموخصوص منوجه لیکن یک چی رو مقدم می تو اینجا اموخصوص مطلقه بیه که معنیه مگر این که یک جوری که معنیه یک راه هم راهیست که مثل معلوم آقا خویی و دیگران رفتن و اون اینکه این نوش و فیشه این لمتا فی جزه و ادار جزه تفایو فلیسته به بشه. بشه. این دلیل ناظر بلاتن خود یقینه به شک چون رکن استثاب وجود شک دیگه این دلیل میگه اگر مورد تجاوز بود شک فلیسه بشه پس دیگه جای به اصطلاح استثاب نیست این انما از شک و فیشه اینلمت جزهو فی ازا جزهو فشک و بشه ازدهی هم تصور ورود کردند. حالا خلا مرموم استاد چلوزی بعد آیا در سال کرد فرقی که بین ورود و حکومت در بود این اصطلاح ورود و حکومت یا روایتی که برای هم ناماده شاید اولین بارهایی که استعمال شده در کلمات مثل موعظه کرکی است هم در جواب نام آمده اما این معنی اصطلاح نیست دو اجزاء حاکم مراد مخصص مرادش از حاکم مخرج بعد از شیخ انصاری این اصطلاح کرده شد که روشن بشه مرمو مستاد فرابین ورود و حکومت رو اینطور طور می دونم اگر به مجرد تعبود به مجرد تعبود یک دلیل از موضوع ازایده دیگه خارج شد خروج موضوعی این میشه ورود اما اگر به مجرد تعبود وارد خارج نشد احتیاج به تنظیر داشت اینجا میشه حکومت فرقش اینه مثلا وقتی قبله اعد من ماوالنا فتشکیل نفی شک کرد هم به مجر نفی شک میشه وجحت این میشه ورود یعنی لا اعد من ماوالنا تشکی این نسبت خبر واحد با استصحاب میشه ورود میشه و قرمت رد با روایاتی که میگه ایوذر نشدتش میشه ورود چون اصلا با شک نکن نیامد تنزیل بکنه من یا من تصرف بکنه اما در اون حدیث گفت این شک و فیشه این لم تجزگو به اصطلاح ما از قبیل قضایی های سلاتیت نه سنایی وجود نیست یک محمود رو مقدرش برش بار بکنه نه بگه شک نیست شک عرضش نیست این, این شک تو ارزش نداره ایشون میگن مختلیزای قاعدیم که میگه شک ارزش نداره و شرط ها جایی که رد نشدیم تجاوز نکردیم این نازل میشه لاطن گذر یقینه به شرط. اون شک رو نازل میشه پس بعد از تصرف اون شرط گرشته به اصطلاح کم و زیاد میشه اینم رأی سوم، پس یک رأی اولی بود دومی حکومت بود سومی وروز بود چهارمی هم اده از ما هسته این تخصیص رو قائل شده یعنی این طور غایب شده این مخصص لا تنقذل یقینه به شکه این شک اون شک رو تخصیص میزنه یعنی لا تنقذل به شک الا شکن جاوست محله این طور بشه تخصیص میشه. یعنی در حقیقت ابقاء به اصطلاح موضوع هست اما خروج حکمیه با اینکه جا جای استصابه شاره قاعده تجاوز را جاری کردید این تصابراتی که ما تا حالا مطمئن کردیم روشن شد این تمام این وجودی که گفته شده خالی از شبه من البار و علال سرش اینه که این وجودی رو کنا گفته در مثل تا است که عموم خصوص منوشه مثل افکم العلماء لا افکم الفتسا چون اون عالم با اون الفصاق به یک جور لحاظ شدن نظر با جمع بکنیم یا تو آرز جمع نمیشه الى یا اکمل علماء لا فکران فصاق الى علماء اون علماء یکی را زیر فصاقه با اون اکلم علماء یکیه فهمه میکنم ما این بحث رو از کردیم که چون در باب اصول شک جهتی لحاظ میشه اصلا شک بین نفسه لحاظ نمیشه و این اختلاف لحاظ اختلاف قانونی ایجاد میکنه ببینید اختلاف لحاظ قانونن دو تا قانون میشه دو تا دستور میشه یعنی به عبالت اختار اینا شکل رو به معنی اسمی گرفتن لا عضل لحظم مبالیناف تشکیف اونجا به معنی اسمی رو دلن. مثلا ببینید لا عضل لحظم مبالیناف تشکیفی ما یروی هم ناسقاتون اگر این حدیث چون است از سندش اشکال داره ثابت باشه مضمون شما بجره خبر باشه الان فرض که موجود خبر باشه که قبول شما قبول نداریم قرطر این دو مطلب ثابت باشه این صلاحیت داره تخصیص بزنه آیه مبارکه و لا تقف و ماله سلک به علم گفت لا تقف و سلک بیه علمون. این حدیث هم میگه اگر سقه نقل کرد ولو نو علم من شک رو ابطال کردم من شک رو نابود لا شد لا لیس در من شک رو برداشتم حالا که شک رو برداش شد اعمالی که به علم دیگه نیست اینجا میشه مثلا تخصیص تصور کرد لا تخمان میشه تصور که میان نمیشه چون اصلا این آیه قابل تخصیص نیست چون شریع احکام عقلیت به تخصیص بر داره حالا اوقاته چیه بحثی که است مثلا تم خایه تخصیص بردار نیست علاوه بر تقو مال شرکت بی علم اصلا قابل تخصیص نمی شه احکام عقلیه میمونه نمیشه بگیم مثلا یه جا ظلم حسنه ظلم میشانسد علای به هر حال من وارد بحث آیناش هم میشم چون اول حجیت ذن چون آیه شه اونجا ان شاء عرض می کنم قرر اگر تصور تخصیص هست یا حکومت این معقوله حرف درستی، یعنی فامله تعبال مجتمل اما بحث ما اینه که دربابه چون این تقریب حالا نیامده تمام اصحاب ما این سه چهار گفتن یا ورود گفتن، یا تخ... حکومت گفتن، یا تخصیص گفتن یا اون نقطه اولی که از گذر طبق این تصور ما اون نقطه اول لازمی که اون خسومنوش باشید اون با اون خسومنطلق مطلق ساز یعنی موردش اون مطلق. یعنی اگر بنا باشه در روایت تجاوز عمل به حساب را تجوز بیمورد مینه مطلق اگر هم به اصطلاح منرش تصویر کردیم به اون نکته‌ای که از کرد اکثر اکثر این راجع به این نکته پس دقت بفرمایید ما در اینجا حرفمون اینه اون لاتن قزل یقین به شک یک جور شک و لحاظ کرده مندکن در یقین به حدوث لحاظ کرده که نماز شک و فیشه انلمت جزه و همون شک رو به لحاظ بعد محل نگاه کرده این اختلاف لحاظ چون در اینجا خود دقیق بکنی در اصول عملیه شارع تصرف میکنه از قبیل امارات نیست که شارع تصرف نکنه اگر شارع فرمون صدق العاده مگر کسایی که قالب تصدیق همه در احکام کنه را ایلا شارع تصرف که نمی کنه. چون تصدیق آدف منشعه مثلا قالبا رسوحو میشه یا مثلا ممکنه یخته ممکنه یوسی هر دو احتمال داره ولذا همین عبارت معروف این عبارت چیه بخاری هم آمده ما حدیث نیست للمختی عجران و للمصیبه عجران این ممکنه خطاب سواب ممکنه اما در اصول عملیه خطا و سوا ممکن نیست اصلا خطا معلومه داره خوب یه تو اصول عملیه چرا؟ چون تصرفی تصرفی که خطا برمیدن وقتی با کلوشه این لکه نزیف حتی تعلمانه و غزران خطا برمیدن اصلا مورد شکه بگید بعد تهمیدیم که این نجست خوب بفنیم مادام شک داشتیم حکم به تهارت هست اینجور نیست حالا که من حکم به طهارت کردم شما شک داشتید بعد فهمیدین نجسه حکم عوض شد نه اون حکم بر موضوعش رفت خود به خود منقضیه تصور بکنید اینکه شما حکم بر اساس طهارت می‌کنید یک چیزه یعنی که بیینه میاد یا شخص میگه این طاهر چیز دیگریه این ممکنه خطا حساب داشت معقوله بگیم نه آقای اشتباه کرد طاهر اشتباه کرد نجیس بود یا دروغ گفت این درش معقوله دروغ درش معقوله اما در کلوشه این لکه نظیف این دیگه دروغ درش معقوله چرا؟ این میاد حکم میکنه اصلا حکم میکنه به طهارت مجهول این تصورت شرقی این یک نوع اعتباره یک نوع تنزیله یک نوع حکم شرقی این طور نیست که تو مقام کارت باشه و عرض کردیم عدهای از آن اصولی ها و اخباری ها مثل صاحبه هداه. حوسه از این روای اجضا در میاد چون به واقع نگاه نکرده اصلا کاری به واقع نداره. این واقع مطابق با واقع باشه نباشه مثل ناظر به اون نیست. ممثل روایت داریم که من شک کردم لباسم قطره خونی افتاده فرصل کردم بررسی که ندیدم نماز خوندم بعد دیدم بشن. در اینجا اساس و نیست مید امام حکمی میکنه به اساس و تاره. اینجا مثلا حکم میکنه به اینکه یا نماز باطل یا سهی رو نقطه خاصه خوده همیسا تصریح و اساس و مورد مورد اساس و تاره هست همیسا در خون مانعیت از نماز هم از وقت فقط تاره هست دقیق کردیم پس بنابراین خوب دقت در باب اصول در حقیقت و ولذا ما در وقت اجزا عرض کردیم اصول به طور کلی مقدار زیادی که عقلایی هستند مثل اساس عدم اساس عدم توضیحش چند بار عرض کردیم یک تصور ضعیفی هست که اساس عدم نه اساس عدم واقعی که هر کی کردیم که هست یا نه واقعا نیست وجود نیست چطور ممکن در حد عدم و فلان وجودش غیر بلریا یعنی نه اینا خب به شعریاداشن از سالات که پیش اغلا هست ما ادراکی به اتباطیه نستبوتیم زید ادراک شده پنز سال گذاشته بچه دار شده نمی بگیم تا الامانش این بچه بس... بس... دار باشه بچه دار می. این از سالات یه اصل است. ما در وقت اگزا هست از کرد وقتی که اصل اغلایی باشه و به اوشاره هم رو در مواردی امزا بکنه این توش تعبض نخوابیده این همون فهم اقلای خوابیده اما اگر اصل شرعی شد و این اصل شرعی در تعبض شبیه اصل مثلا لا خود یعنی به شهر شبیه استثابیت که اقلای جاری دیاری اگر اینجور هم شد این هم مثل همون اصل اولی یعنی به عبارات اخراج اصل یا است، یا شرعی است که در لسان دلیل آمده و که میخوره به زمینه اغلایی خوب درقت بکنه میخوره به زمینه اغلایی یا شرعی صرفه که در معیاره اغلایی نبوده مثل قاعده تهارت قاعده تهارت در معیاره اغلایی نبوده ممکن که حکم به چیزی نداره، حکمی داری جهاز ندارم این احکام طهارت اگر شما به اعتماد احساب طهاره نماز خوندید و بعد معلوم شد اون شی نجسه طبق قائلان گفت به صحت بکنید چرا؟ چون کل شیی نجیب میتونه نازل باشه بلا صلات الا به طهور میگین طهور این سر مسئله اون تسمه در امارات که قائل ما تعبدی نداری فی نفته مگر تعبود از یک جد دیگری ای دید که این شد توزید اما در باب اصول تعبود هست در باب اصول اون اصول شرعی درش تعبود هست یک نوع تصرف اشاره کرده و ما رو تعبود داده بگم وقت در اینجا که تعبود آمده وقتی میبینیم وقتی این تعبود رو هم برده روی حد ادراک ما اون شک و یکی اون حالات ما مثلا این گفتی تو اگر شک در سجده کردی هنوز بلند نشدی از این زاویه نگاه کرد شک در سجده کردی در حال رکو عرکت بعدی زاویه دیگه نگاه کرد چون هر کدام دارایی حکمن خوب دقت بکنیم چون تو تعبود دیگه بحث کاشف مطرح نیم بحث تریقیت مطرح نیم چون بحث تعبوده و هر دو یک زاویه, زاویه مستقلی هستن لذا به نظرمان مثل اینجور موارد اصلا نجای حکومت نجای حرود نجاییش که جاییش رو میهیست تو تو موضوع مستقلن شکل در دو حالته. وقتی شاره میاد همین گوشت رو شک در پسیر تو بیابونی یک جور نگاهش میکنه همون گوش همون شک تو زکونه قدسابی نگاه میکنه رابطه ای این گوشت رو با اعصاب این رابطه رو نگاه میکنه حبقی این رابطه اما اگر گوش رو فی نفسه نگاه کرد بدون رابطه میگه از عدم تزکیه همون گوش رو در رابطه با قصار با تسرور وقتی این خونه ای مسلمان قضان رو شک کردیم گوشش ترکیش روی نه قصار در تسرور رو اینجا میاد گوش رو در رابطه با تسرور مسلمان نگاه میکنه پس این دو تا ضابط دو تا شور این اینطوره پس شک اصولا در لسان اصول دقت میکنه حالت معنای اسمی به استقلالی نداره هر از زاویه نگاه, میکنه. نگاه میکنه. اما تو رکوع که مت نگاه نمی‌کنه همین می‌خوام بگم همین که نگاه کرد نکرد دو تا میشن دیگه چون مفقوز اینه که طبق نگاه هم حکم میکنه خوب دقت بکنه خب بله خب زاویه یعنی در زاویه خب همین منشأ وجود دو زاویه منشأ خب این دو تا باشه اما همین از هر دو زاویه داره شک یکیه فرق در حال رکوعش نگاه کرد گفت رد رد بشن. حال سجده بعد از سجده گفنه انجام بده هرگاه شکه در حکر سجده ثانیه بیش شکش یکی. لذا به نظر ما وقتی که دو تا حب و بعدش هم خوب نکته فنی چیه؟ نکته فنی طبق این لحاظ حکم میکنه طریق قرار نمیده اما اگر گفتیم اماره بله انصافه اینی که ازده ای از اصولی نهل سنت آمازن مثلا در اینجور موارد یا شیعان ما یا این اینجور از موارد نصفت تنجیدن این که از مکار این هم ذهن شما رو آشنا بکنم درام وقتی التزام بی یک مبنا دادی همینجور دنبالش درین وقتی التزام بی یک مبنا همینجور دنبالش درین این شاید در این مبنا بوده که استصحاب را اماره می جونستن. گر از این بدونیم انتظار قضیه بار همون نسبت رو با تجاوزه تجاوز امارات دیدن سال من سال کوی قائد تجاوز از باب امارات. حالا فراغ را می‌دونم تجاوزی از کدیست؟ کدیست؟ من از کدوم با سازگر کردم کلامی شنیدم نکردم. اگر قائدین تجاوز رو صبر کنم اعلام این زاویه دید نیست. اعلام اینجوری می‌فهمم که من مشغول سعی بودن الان بلند بولشدم، همدغلوال لکنده وقتیم بریم. دیگه من می‌بینم به فهم آقلای اون سجده انجام شده ببینید پس برگردیم این شما چیجور تفسیر میکنیم اگر تفسیرتون این شد که من زن به اتیان سجده دارم انصافاً باید ما بین این دو تا نسبه مراحب شد من اگر تر بلند کردم همون لحظه زن به عدم سجده دارم چون یکی که دو مسلم دومی رو زن دارم بنابراین اینکه یقین به حدوث منشه زنه به بقایی اگر رفتم تو بروه هم بادم زنه به تجده دارم اگر قاعده تجاوز به استصحاب رو اینجوری معنا کردیم اگر گوش رو تو بیابان دیدم شو میگم اینجور بیابان کسی نیست سال حیوان خودیش مرده اصده مرده یا یک شیلی بشم به گرده کشت به جزیش رو گرده ببینید این خودش برای ما زن میاره که این ترکیه نشده همه همون گوشت تو بکنه قطعایی ببینم و سوق مسلمان ها و ظاهرش این طور است از زنها رو باشه بله هم من اغلا که اینشون مثلا مسلمان هم هست و عمدن فرس کرده باشن خلاف ظاهر پس ما در حقیقا قائده سوق مسلم رو هم از باب زن حجت بدونیم استطاع رو هم از باب زن حجت بدونیم یعنی برای هر دو اماریت قائد این ببینید اون مبنای اماريه نتیجه این میشه که این دو تا دلیل رو باید با هم مقایسه کرد مثلا عقل علما اون قصاق العلماء میشه اما از این زاویه‌ای که من مطرح کردم و این تمیزی من عرض کردم نه اینطور نمیشه ولی اما چون دو تا, دو تا لحاظه چون اف این تو دو تا لحاظه اون میاد شکه در تجده رو ب... در حال رو بود. این یک اجازه بدین دو این که اینجا حکم داره فقط زن نیست که طریق به واقع باشه اگر شما طریق گرفتین یک حساب داره حکم داره میگه. دو تا شک رو لحاظ مختلف که دو تا حکم مختلف هم داره در یک حکومت فاجیره رو در یک حکومت دیگه استصحاب واجبه عام میاد اینجا اگر ما بلا اگر نداشتی عزیز من مثل قائل نداشتی مثل فرض مسئله اجازه بدین مثل مسئله در وجود تجاوز نداده می‌اوند ما تا بگیره مشغول مکس سرش شک کرد در سرش هستم برگرد اساس بشه یعنی چه جو برگرد استام که قدمت از من این چی شد که عبوس شد داره حواش کو نماز و نظام مرحوم ناهینی قدس الله این چون یکی از بحثه مهم در قواعد تجاوز مرحوم ناهی میگه می‌پرسان ببین کی چون قاعده تجاوز تعبدیه در نماز دلیب داریم که هست در حضور دلیب داریم که نیست، در برمیه جهاتی تو تو هج توی تواق هستان با اتوقات شک کردیم در تواف سوم انجام دایی نداریم تو نماز ثواف شک کردیم در نماز ثواف رو خونی تجاوز سو در شک میکنی شبت هستان انجام دایی نداریم آیا تو اعمال هست خواهده تجاوز جاری می‌شادی میشه، میشه نایی نمیشه نمیشه چون این علاف فقط تو نماز آمده تو وضو که جدی که دغدغی ندارین اصلا در موضوع قاضی و وضو در بقیه اعمال هم در این آخیشون یک و دارن میگن در تمام دارین الا وضو ولی که از مبانی خطابشون اینه معلومه آقایان میگن در هیچ جا و تجاوز نداریم الا نماز, نماز در چرا اون ناش نارتان مش از درکد سوم شک در رکوع رکعت اول انجام داده به واسطه عدم به واسطه که شک وقتی که انجام و انجام انجام اینجا نمیشه چه تا که قایده که شوخون شک اگه قاعده تجاوز اون استثنا رو نصب می‌کنه روایت همین مقام تعبده حالا ولی تجاوز قاعده, س... قاعده فرا همه جا میان در وضو هم میاد چون قاعده سمان. خوب دقت قاعده که بعد از عمله در وضو هم میان اما قاعده تجاوز روایت در وضو نمیان در مسته سر میکنه شرک در سراس شسته نماز بعد نید در سراس در سر در, در, در, در همین اگر مبنای مرمون هایی که چون قاعده تجاوز تحبوزید فقط در خصوص نماز و در وضوع تفلیل شده که می قاعده تجاوز بقیه اعمال ها هم تحبوز نمازه آ رویی چون قاعد تجاوز این ها دارو با حالای هم میدونن تجاوز هم شبه دارده دونن تو هر جاری تو هر جب هر تجاوزشون جاری کنن برو ما اقتصاد به یکی از قباط اختلافه این این دو بزرگوار در مسئله قاعد تجاوز ما هم در محلی خودش عرض کردن نفتی غیر از این که این که از که هم با محله منانگی زیاره نمیشه اینجا اینجا درست اینجا در محله خودش از خلافی اینجای زاویی دیگه نقطه دیگه, دیگه, دیگه, برس دیگه برس بله در مثل ما معتقدیم خود اعمال حج و هر خدا عمل مستقلی باشه مثلا اگه در سر این شکل توافه انجام داده دارن نکنه چون خود توافه نمادش اعمال کاملیه حالا در خیل حالا اجازه بذارم. من چون یک مقدمات دیگه هم دارم من که نیم همه همیش اون همیشون بشه. بشن از کام خدمت روشن شد آمدن پس بنابراین نظر بنده اینه اگر ما لگه خطونیم اماهیت گرفتیم و باب زنده اون هر درسته از نظارت می چون دو موضوع میشه دو تعبده خواهران مثلش خب میگن میخوام همین استصحاب جلو ها اینا جلوشی نه هر چی جلوش نگیر مثلا نظر نداره چون استصحاب قوامش که عامل سبب رو بیاره مثلا با همین چون که سر قاعده باشه که که یعنی میاد نگاه میکنه استصحاب عدم ترکیه میکنه اما وقتی که آمدید دست متقدمات رو کد قداسی دیگه اصلا نظر نمیکنه برنامه درسیه یعنی تفکیکش ده اصلا دو موضوعه دو لوازم استصحاب نداره چون اینجاها از کل اون نقطه اینه شما اطلاق رو در مت معانی محن اسکی تطور میکنه مثل علم العلل ها اصلا خود ادله استصحاب اطلاق نداره چون عدل استثاب شک و دلحاظ یقین ببینیم؟ در رواد زراران هم همینطور دیگه فهم نکه کن تعالی یقین امن وزوی اول اینه. نمیاد میگه وزو و وجود وزو نمیگه وجود خارجی. بله یه اختلافی برده با آیان دارم اینه که این معلوم میتینه استثابی که اینا میگن مراد باشه عزین حدیث اون بحث دیگریه تقریر ما عزین حدیث بالمشهود یک کمی فرق داره چون مشهور از, از این مشهوری که الان همه حرف میکنم بعد از شیخ و در زمان ما شبههی پیدا شد برایشون که با قول خودشون یه عبیساته مثلا این کسانی که خیلی مغیدن که اصل مثبت به هیچ نفری قبول نمیشه واسه خبیل باشه یا جلیب باشه اشکار هم اینه ما دلیل نبریم لا تلات الا به وجود دلیل لا الا به طهور امام باید قاعدتا می‌تواند فعل نکه کن تعالی یقین منطهوره چون لسان دلیل اگر باید مقایسه بکنیم باید این لسان نازل به لسان اون در دیگه باشه اگر می‌تواند لا الا به اون وقتا می‌تواند یقین این مخصول آقایان ولیتا چرا گفرند نکرد کن تلا یقین رابطه بین موضوع و بین و اون خفیه کسانی که ماهد هستم مثل تحضیب واسطه که واسطه رو خفیه باشه این که اصل مصبته اشکالی کن که اصل این اصل مصبته فعلم نکه کن تلا یقین از اثبات طبور چون لسان دریم دار دا من هم عرض کرده. هر وقت در لسان دلیل یک عنوان آمد و مجرای اثر عنوان دیگری می این میشه شود مصرد کلی تو باید بوشی؟ نه یعنی اگر وضوع بود تو هم اگر با علاج... یعنی عرض عرض اینه که علا کنته علا من که این خویشاره بلندم خب که اینو همین چون واثهو هم فوق عادیه جواب دادن که اینجا اثر مثبتش کار یک از ها هم میگن اثر مثبت رو واثه تو قرارداد طبی نمیشه. نمیشه، قبول نمی میگن نمیشه هیچ وجه. ببین لسان دلیل لا تالات الله به ظهور. اینجا با اثر چی میگه انکه قطعا یقین من موضوعه. بله در آقومتی شرعه حضور با طبور یکیه اون کسانی که مشکل دارم پس مجراد ارت استثاب حضوره موضوع حق طبوره نازمت اللا با طبور این اشکالی که از کنم در, در اصول ما مطرح شده که این ببایدی که از اهم مدله استثابه مثبت خوده این چیز جواب دادیم ما معتقدیم که این روایت شاید ناظر به یک مسئله دیگه باشه، ما با می‌خوامن مباحث استصحاب کلش این چیزا، مقدمات، ما این اینجوری هم هر نمیشیم ان تا الله تعالی در مرحله با مقدمات و مؤخراتش اونجا حرکت میکنیم و کیف ما که مهم این است که میاد در حال استصحاب اون یقین از این زاویه. کن تعالی یقین این رو ولی اصطلاح انتن قضای یقینی بشه، غلطان قضای یقینی بشه. بگردین حس در استصحاب هم زاویه در قاعده تجاوب هم زاویه استصحاب که نه باز لحاظ بکنید کرد اگر لحاظ کردید حالت صابر رو میشه استصحاب اگر نه لحاظ در رکوع اگر شک کردیم در سجود شک نکنید لحاظ صابر رو ندید همون گوشت شما تو دکل قصه بگیدیم میگه دیگه ادام تذکیه رو ندید. ادام تذکیه رو ندید. نگاه نمی به ادام تذکیه. برزه اتصاب جایی نمیشه. از سلالله سلال محمد این